ماراز خیال تو چه پروای شراب هست خمگو سر خود گیر که خمخانه قراب هست گر خمر بهش دست بریزی که بی دوست هر شربت عزبم که دهی این عذاب است افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط اون نقش براب هست بیدار شوی دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دم آدم که در این منزل خواب است معشوق ایان میگذرد بر تو ولی کن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است سبزه است در و دشت بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است در کنج دماغم مطلب جای نصیحت که پر از زمزمه چنگ و رباب است حافظ چه چشو در آشغ و نظر و نظرباز بستور عجب لازم ایام شباب است